عزیزان به کلاس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدید. ما با هم شروع به بررسی کله کتاب مقدس کردیم که در هر جلسه قسمتی از اون رو بررسی می‌کنیم و من خیلی خوشحالم که شما دانشجوی وفاداری برای کلام خدا هستید. ما مطالعه کتاب قلاتیان رو شروع کردیم. کتابی که نامه احساسی پولس به کلیسای تازه تأسیسی بود که درنامه تلاش میکرد از این کلیسای جوان در برابر انجیل تحریف شده محافظت کنه. پولس در اش نمای شفاف و خلاصه از کتاب مقدس رو به ما میده. اگه شما بپرسید که انجیل چیه، پولس این موضوع رو برای شما به طور شفاف باز میکنه. حالا بیاید با هم به معلممون ملحق بشیم و به درس امروز گوش بدیم. در این جلسه باز هم به بررسی نامه پولس به غلاطیان ادامه میدیم. وقتی پولس شنید انجیلی که معزمی کرده تحریف شده و به جای اون انجیل دیگه ای رو معزمی خیلی آشفته شد. او نتونست منتظر کاتب بمونه که نامش رو بنویسه و خودش رو به نوشتن کرد. متن نامه او اینگونه بود. من از این تعجب می کنم که شما به این زودی از آن کسی که شما را به فیض مسیح دعوت کرده است روی گردان شده اید و اکنون از انجیل دیگری پیروی می کنید. در صورتی که انجیل دیگری وجود ندارد، همه ای هستند که میخواهند شما را مضطرب سازن و انجیل مسیح را تحریف نمایند. حتی اگر ما یا فرشته ای از آسمان انجیلی غیر از آنچه ما اعلام کردیم بیاورد بر او لعنت باد. کنان که قبلا گفته بودم باز هم تکرار می کنم. هر کسی که انجیلی غیر از آنچه پذیرفتید بیاورد، بر او لعنت باد. پولس رساله غلاطیان رو اینطور شروع میکنه و در اون رساله توسط انجیل واقعی با انجیل تحریف شده مقابله میکنه. پولس به غلاطیان میگه وقتی که من به نزد شما آمدم و انجیل رو بشارت دادم، نجات توسط فیض، توسط ایمان امکان پذیر بود، نه چیزهای دیگه. ولی کسانی که کار مرا در بین شما ادامه دادن، به شما گفتند که چیز دیگری رو باید به این فیض و ایمان اضافه کنید تا نجات شما کامل بشه. اونها میگفتن فیض کافی نیست. باید ختنه بشید و شریعت موسی رو نگه دارید. پس پولس خیلی قاطع علیه انجیل تحریف شده میسته و به گلاتیان میگه که انجیلی که من موعظه کردم انجیل مطلقه چون او انجیل رو از عیسی توسط وحی مستقیم وقتی که در عربستان بوده دریافت کرده بود. از آیه یازده باب دوم تا انتهای باب دوم، قسمت زیبای دیگری از نامه پولس به غلاطیانه که بر روی انجیل مطلق تمرکز داره. انجیل ایسای مسیح موضوع اصلی نامه کوچک پولس به غلاطیانه. مشکل غلاطیان این بود که انجیل در بین اونها تحریف شده بود. به این دلیل تمرکز پولس در اینجا هر چند کوتاه ولی کاملا مستند بر انجیل ایسای مسیح است. من این قسمت در باب دوم رو انجیل وارونه نام گذاشتم تعلیم بزرگ پولس رسول در اینجا از تجربه ای که با پتروس داشته گرفته شده مسئله ای که وجود داشت این بود که در واقع خیلی از مردم قبل از اینکه شاگرد عیسی مسیح باشند یهودی بودند اونا میخواستند که آداب و رسوم یهودی رو در کنار تعهد پیروی از عیسی حفظ کنن اونها در مورد این مسئله شورایی در اورشلیم برپا کرده بودند و مقرر کرده بودند که اگر یهودیانی که مسیحی بودند و می‌خواستند رسوم و رژیم غذایی یهودی و سنت خودشون رو حفظ کنند به شرطی که برای نجات به اونها متکی نباشند مشکلی وجود نداشت و اونها می توانستند رسوم خودشون رو حفظ کنند اما اونها معتقد بودند که مسیحیان غیر یهودی نیازی ندارند که سنت یهودی رو به جا بیارند نباید این بار گران رو به گردن ایمانداران غیر یهودی بذارن. شرح دومین شورای اورشلیم در باب 15 کتاب اعمال رسولان نوشته شد اما ضمن اینکه پولس و برنابا انجیل رو به دنیای غیر یهودی موعظه میکنند مشکلات کلیسا همچنان ادامه پیدا میکنه مثلا در شهر انتاکیه ایماندارانی در کلیسا بودند که یهودی بودند و کسانی هم بودند که غیر یهودی بودند بعضی از اونها با هم به صورت اشتراکی زندگی می کردند و با هم غذا می‌خوردند در نتیجه مشکلاتی داشتند که آیا باید رژیم غذایی یهودی رو زمانی که با هم غذا میخورند حفظ کنند یا نه ظاهراً زمانی که اونها با هم غذا می‌خوردن دو میز داشتند روی یکی از میزها غذاهای یهودی بود و روی اون یکی میز غذاهایی بود که از رژیم غذایی یهودی پیروی نمی کرد. غیر یهودیان میتونستند از میزی غذا بخورند که روش استیک خوک و تخم مرغ و ساندویچ جامبول خوک وجود داشت و چون قوانین یهودی به یهودیان اجازه نمی داد از این غذاها بخورند، باید سر میز خودشون می نشسته. وقتی که پولوس رسول از انتاکیه دیدار کرد همه منتظر بودند ببینند که پولس کدوم میز رو انتخاب می کنه؟ او یک معلم یهودی بود او یک فریسی بود او پای سفره یک کاهن اعظم رمالائیل مینشست ولی پولوس سر میز غیر یهودیا میشینه و استیک خوک و ساندویچ ژامبون خوک میخوره پتروس تحت تاثیر او قرار میگیره و با پولوس سر میز غیر یهودیان میشینه به نظر میاد که اینجا اولین باریه که پتروس از استیک و ژامبون خوک مزه میکنه اما یک روز که پولوس رسول سر میز غیر یهودیان نشسته بود و پشتش به در بود بعضی از برادرانی که از اورشلیم آمده بودند و سنت های غذایی یهودی را حفظ می‌کردند ظاهراً پشت در بودن من خیلی دوست دارم این صحنه را همیشه تجسم کنم که پتروس در حالی که داره ساندویچ ژامبون خوک رو گاز میزنه، برادران یهودی وارد میشن و وقتی پتروس اونها رو میبینه، از سر میز غیر یهودیا بلند میشه و میره سر میز یهودیا برنابا هم تحت تاثیر او قرار میگیره و از پتروس تقلید میکنه. در این لحظه پولس سرش رو برمیگردونه تا ببینه چه کسانی دمه در هستند؟ اینجا می بینیم که پولس عصبانی میشه. پولس در آیه یازده باب دوم غلاتیان میگه، اما وقتی پتروس انتا رو به انتاکیه آمد، رو با او مخالفت کردم زیرا کاملا مقصر بود. او اشتباه کرده بود. یونانی هایی که اینجا بودند، دقیقا سر میز بودند و همه چیز رو میدیدن در واقع پولس در مقابل کل اعضای کلیسای انتاکیا با پتروس صحبت میکنه. چون قبل از اینکه برادران یهودی بیان پتروس سر میز غیر یهودیان بود. زمانی که برادران یهودی آمدند، پتروس تحت تاثیر اونها قرار میگیره و میزش رو عوض می‌کنه. وقتی پولس با پتروس برخورد می‌کنه، چیزهایی میگه که تقریبا مشابه حرفهایی که در نامه به رومیان زده. در آیه 16 پولس به پتروس میگه: خوب می‌دانیم که هیچکس با اجرای مقررات شریعت در حضور خدا کاملا نیک محسوب نمیشود. بلکه فقط بر اثر ایمان به عیسی مسیح نیک محسوب می‌گردد ما خود نیز به مسیح عیسی ایمان آوردیم تا به وسیله ایمان و نه با اجرای شریعت نیک شمرده شویم نه فقط ما بلکه هیچ بشری از راه انجام احکام شریعت نمی‌تواند نیک محسوب شود پولس میخواد بگه اگه من برای نجات به مسیح اعتماد دارم ولی مجبورم که این شریعت را هم حفظ کنم تا نجات پیدا کنم پس مسیح بیهوده مرده. خدا این رو من کرده. این چیزی که میگیم چیز وحشتناکیه. بعضی از امیخترین حقایق الهیاتی که تا به حال توسط پولس رسول گفته شده فریادیه که پولس رو در روی پتروس در فاصله دو بعد شام در انتاکیه زده. اون در این متنیه که پولس به ما داده و بهش انجیل وارونه میگی. در آیه بیست از باب دوم در پایان برخورد با پتروس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 من به این موضوع انجیل وارونه میگم چون اساساً چیزی که پولس میخواد بگه اینه. انجیل واقعی اینه. مسیح مرد تا تو بتونی زندگی کنی. انجیل اینه. ولی در انجیل وارونه اینجوری گفته میشه. حالا شما میمیرید تا مسیح بتونه زندگی کنه. این همون انجیل وارونه شده است. این آیه کوچک با باب دو آیه 20 رو خیلی از مردم حفظش میکنن. پولس این قسمت رو اینطور شروع میکنه که او با مسیح مصلوب شده این در آغاز مثل یک نوحه در مراسم خاک سپاریه من با مسیح مصلوب شدم پولس این رو تصویر میکنه پولس رسول در یک آیه سه بار میگه من زندگی میکنم اکنون اینطور طور زندگی میکنم زندگی میکنم پولس سه بار میگه که زندگی میکنه پولس واقعا در این آیات در مورد مردن صحبت نمیکنه پولس در مورد زندگی صحبت میکنه و او به ما سه دلیل میده که چرا او زندگی میکنه؟ اول از همه در یک آیه پولس میگه من به وسیله ایمان زندگی میکنم این پیام کتاب رومیان و به صورت مختصر پیام کتاب قلاتیانه من با مسیح مصلوب شدم به طوری که دیگر آن که زندگی میکند من نیستم بلکه مسیح هست که در من زندگی میکند و در خصوص این زندگانی جسمانی که من اکنون دارم فقط به وسیله ایمان به پسر خدا که مرا محبت کرد و جان خود را به خاطر من داد زندگی می کنم. دو و من او در این آیه میگه من زندگی می میکنم چون مسیح در من زندگی میکنه اینجا تعلیم پویا پولس اینه. مسیح در من زندگی می میکنه پولس به مردم این رو میگه آیا نمیدانید بدن شما معبد روح القدس است که خداوند به شما بخشیده و در شما ساکن است علاوه بر این شما دیگر صاحب بدن خود نیستی به این دلیل که وقتی شما تمرین بدنی انجام میدید و استراحت می کنید شما میتونید به این بگید پاکسازی معبد، شما معبد رو تمیز می کنید که مسیح در آن زندگی کنه. این یک تعلیم پویا هست. مسیح در من زندگی می کنه. به این موضوع فکر کنی. این یکی از ترین حقایقیه که در عهد جدید به ما آموزش داده میشه. مسیح در شما امید جلاله. مسیح در شما زندگی می کنه. پس پولس در این آیه میگه بلکه مسیح هست که در من زندگی می کند. و در خصوص این زندگانی جسمانی که من اکنون دارم فقط به وسیله ایمان به پسر خدا که مرا محبت کرد و جان خود را به خاطر من داد زندگی می کنم حالا این جاییه که مسیحیت یک مقایرت بزرگ را معرفی می کند اگر شما تعلیم عیسی را متوجه بشید تنها راه بزرگی کوچک شدنه. تنها راه برای زندگی کردن مردنه. تنها راهی که بخواهید زندگی خودتون رو حفظ کنید اینه که اون را از دست بدید این چیزیه که پولس میگه. عیسی تعلیم داده که زندگی شما مثل یک ماده در یک ظرف شیشهاییه، مثل شن توی ساعت شنیه. چیزی که در مورد شن در اون ساعت شیشهایی میشه گفت، اینه که زندگی شما را به تصویر میکشه. شما نمیتونید جلوی اون رو بگیرید، مثل زمانی که دانه‌های شن از توی شیشه بیرون میان، شما نمیتونید جلوی اونها رو بگیرید. تنها کاری که میتونید بکنید، میتونید قدری اون رو کنترل کنید. شما فقط میتونید بذارید اون به راه خودش ادامه بده. شما میتونید اون شنها رو حبس کنید یا به دلیل اشتباهی اونها رو بریزید بیرون. شما میتونید اون رو برای دلیل اشتباهی قربانی کنید و یا برای دلیل درستی. این چیزیه که مسیح اون رو به ما تعلیم میده. اینکه باید با زندگی هامون یا با ماده‌ای که در رگ‌هامونه چیکار کنیم؟ به قول عیسی ما نباید اون رو حفظ کنیم. ما حتی نباید اون رو به قیمت بسیار بالایی بفروشیم. ما باید اون رو برای جلال خداوند و جلال عیسی مسیح قربانی کنیم. ما باید اون رو در جایی صرف کنیم که عیسی به ما میگه. عیسی میگه که حالا وقتشه که اون رو فدا کنید و برای چه کسی اون رو فدا کنید؟ به قول عیسی و پولس این کاریه که ما باید با زندگیهای خودمون انجام بدیم. این همون منظور پولس وقتی که میگه من با مسیح مصلوب شدم. من این حقیقت بزرگ رو کشف کردم که تنها راهی که بشه زندگی خودتون رو پیدا کنید این که اون رو از دست بدید و تنها راهی که بتونید زندگیتون رو نجات بدید اینه که اون رو قربانی کنید تنها راهی که بخواید زندگی کنید اینه که بمیرید چیزی که پولس تعلیم میده اینه تعلیم پولس به در راستای تعلیم عیسی قرار داره من به این تعلیمات پولس انجیل وارونه نمیگم چون چیزی که پولس به پتروس در بین دومیز شام کلیسایی گفت اینه تو با حفظ رسوم یهودی نمیتونی جان خودت رو نجات بدی فقط در ایمان به اینکه مسیح برای تو چیکار کرده میتونی نجات پیدا کنی. عیسی مرد تا تو بتوانی زندگی کنی. این انجیله. حالا اینکه تو بمیری تا او زندگی کنی، این انجیل وارونه است. تعمید زیباترین جلوه عملی این حقیقت عمیقه که توسط عیسی مسیح و پولس تعلیم داده میشه. من به تعمید ایمان دارم. چیزی که من در مورد تعمید خیلی دوست دارم اینه که تعمید تصویر بسیار زیبایی از این آیه هست من با مسیح مصلوب شدم به طوری که دیگران که زندگی می کند من نیستم بلکه مسیح است که در من زندگی می کند همونطور که شما توی آب پایین میرید، شما به زندگیتون با مرگ عیسی مسیح هویت میدید. شما ایمانتون رو ابراز می کنید نه فقط در مرگ مسیح برای بخشیده شدنتون بلکه شما به دنیا نشون میدید که شما با مسیح مصلوب شدید نشون میدید که خودخواهی و تفکراتی رو که برای خودتون در زندگی میخواستین خواستین کشتین و با این کارتون به کل جهان میگید که شما مسیح رو وارد هاتون نکرد بلکه مسیحی که شما رو وارد برنامه های خودش کرده شما تمام برنامه هاتون رو کشتید سپس وقتی از آب بیرون میاید، ایمان دوباره زنده شدنتون در مسیح رو ابراز می کنی. شما به کل جهان میگید که با مسیح قیام کردید ببینید این انجیل معکوس شده است عیسی مرد تا بتونید شما زندگی کنید و حالا شما برای خودتون میمیرید تا عیسی زندگیش رو در شما پیاده کنه این آیه قلاتیان باب دوم آیه بیست در واقع خلاصه شده کتاب رومیانه وقتی که پولس میگه من به خاطر ایمانم زندگی میکنم این مثل باب اول کتاب رومیانه بعد در باب پنج تا هشت، وقتی که پولس به ما نشون میده که چطور میشه بر گناهان غلبه کنیم واقعا داره همین جمله رو میگه من زندگی میکنم چون مسیح در من زندگی میکنه روحی که در من زندگی میکنه بزرگتر از قانون گناه و قدرت گناهی که تلاش میکنه منو پایین بکشه بعد وقتی که میگه من زندگی میکنم چون من با مسیح مصلوب شدم مثل بابهای انتهایی کتاب رومیانه که اونجا به ما میگه بنابراین ای برادران با توجه به این رحمتهای الهی از شما درخواست میکنم های خود را به عنوان قربانی زنده و مقدس که پسندیده خداس با او تقدیم کنید. عبادت روحانی و معقول شما همین است. این مثل این چیزیه که میگه من زندگی میکنم چون من با مسیح مصلوب شدم. من بدن خودم را مثل قربانی زنده با او دادم. این خلاصه نامه پولس به رومیانه. من شما را دعوت میکنم تا با باب دوم آیه 20 رو حفظ کنید. آیا شما با مسیح مصلوب شده ای؟ آیا شما در او و برای او زندگی میکنید این چیزیه که باید بهش فکر کنید در باب سوم و چهارم نامه احساسی پولس به ایمانداران گلاطیه پولس در مورد چیزی صحبت میکنه که من دوست دارم اسمش رو انجیل در معرض دید بذارم چون این دوره بررسی اجمالی هست وقت نداریم که به طور عمیق وارد این باب ها بشیم و آیه به آیه اونها رو بررسی کنیم هر من دوست دارم این کار انجام بدم چون اینها بابهای خیلی عمیق و مهمی در کتاب مقدس هستند در باب سوم پولس رسول هشت سوال میپرسه پولس دوست داشت که این سوالات رو بپرسه چون میدونست که این سوالات باعث میشه ما فکر کنید همچنین پولس به این دلیل سوال میپرسید چون عیسی هم سوال میپرسید. عیسی در انجیل متا هشتاد و سه سوال پرسید معلمین دینی قدیمی مثل کاهن اعظم قمالائیل دوست داشتن با سوال و جواب یاد بدن اسم یکی از اونها هیلل بود که حتی سوال شاگردانش رو هم با سوال جواب میداد وقتی که او از شاگردانش دانش سوال می پرسید و اونها جواب می دادند او جواب اونها رو با سوال دیگه ای پاسخ میداد یک روز یکی از شاگردانش پرسید استاد هیلیل چرا شما همیشه سوال ما رو با یه سوال دیگه جواب میدید؟ او جواب داد چرا باید این کارو نکنم ؟ پولوس اینجا در غلطیان با سوم 8 سوال مطرح میکنه اگه شما به سوالات پولس گوش بدید و به اینکه او چی می پرس فکر کنید و بعد پاسخ بدید متوجه میشید که این سوالات و جوابهای اونها استدلال قوی پولس در نجات از طریق ایمانه و نه از طریق کارها و اعمال ما. پولس به ما تعلیم میده که به جا آوردن شریعت و احکام باعث نجات ما نمیشه در ارتباط با باب سوم دو تصویر به ما میده. اولین تصویر تصویری از ابراهیمه هر وقت عهد جدید در مورد ایمان با ما صحبت میکنه معمولا اسم ابراهیم رو هم میشنویم وقتی که چند جمله رو خوندین شما اسم پدر ایمان ابراهیم رو همونجا خواهید دید در پی این هشت سوال و جواب در باب سوم پولس سعی میکنه به ما تعلیم بده که ما به وسیله ایمان نجات پیدا کردیم و نه هیچ کار دیگه ای. برای نشان دادن این حقیقت پولس اسم ابراهیم رو میاره با این حال پولس در اینجا حقیقتی در مورد ابراهیم به ما میده که جای دیگه‌ای نمیتونیم اون رو پیدا کنیم پولس به ما میگه که پدر ما ابراهیم آرزه ای داشت. اون آرزه ایمان بود. هر کسی که هدیه ایمان رو از خدا دریافت کرده تا به انجیل واقعی که من به شما بشارت دادم ایمان داشته باشه آرزه ایمانی شبیه به ابراهیم داره. این جمبندی من و خلاصه هشت سؤال باب سوم قلاتیانه که پولوس اونها رو عنوان کرده. آیا تا به حال از خودتون پرسیدید که چرا بعضی از افراد زمانی که موعظه و بشارت انجیل رو میشنوند بهش ایمان میارن در حالی که بعضی از مردم میگن این بزرگترین چیز احمقانه ای که من توی زندگیم شنیدم. این به این دلیل نیست که کسی که به اون ایمان میاره آدم باهوشیه و اونی که ایمان نمیاره آدم باهوشی نیست این به اون دلیل نیست که کسی که به اون ایمان داره آدم روشنفکری نیست و اونی که بهش ایمان نداره آدم روشنفکریه ایمان ربطی به روشنفکری نداره شما آدم‌های روشن فکر رو در دو سوی این مسئله ایمان میبینید. ایمان کاری نداره که شما چقدر باهوشی. ایمان هدیه ای از طرف خداست که به شما داده میشه. خدا میخواد که اته ایمان رو به شما بده. پولس به فیلیپیان گفته چون این امتیاز به شما عطا شده است که نه تنها به مسیح ایمان آورید، بلکه به خاطر او نیز رنج و زحمت ببینید. سوال بزرگ اینه آیا می‌خواد که ایمان داشته باشی؟ خواهید که عطیه ایمان رو دریافت کنی پولس به افسوسیان در مورد این ایمان که هدیه ای از طرف خدا صحبت میکنه، ایمان به کارهای شما ربطی نداره هیچ کسی تونه به این واقعیت فخر کنه که دارای ایمان هست اگه شما ایمان رو دریافت کردید ایمان دارید چون خدا به شما اون رو هدیه داده در گلاتیان باب سوم پولس به ما میگه که اگه شما ایمان نجات بخش رو توسط ایمان به انجیل مسیح دارید پس شما فرزند ابراهیم هستی به عبارت دیگه به صورت روحانی شما یک یهودی هستی برای همینه که دکتر ام ار هان میگه یک مسیحی ضد یهودی یک هیولای الهیاتیه امکان پذیر نیست که شما شاگرد عیسی مسیح باشید و از یهودیت بدتون بیاد چون اگه شما باب سوم غلاطیان رو درک کنید متوجه میشید که شما خود به خود یهودی هستی به صورت روحانی شما یک یهودی هستید اگه شما این ایمان رو داشته باشید به صورت شرعی و روحانی فرزند ابراهیم هستی چون شما همون آرزه ایمانی رو دارید که ابراهیم از اون رنج می‌برد پولس یه تصویر دیگر رو اینجا در باب سوم به ما میده پولس به ما میگه شریعتی که ما استفاده می‌کنیم تا خودمون رو نجات بدیم یک دلیل داره پولس با نشان دادن تصویری به ما نگاهی از بالا به این شریعت میندازه پولس می‌نویسه و معلم نادان و آموزگار کودکان می باشی و صاحب شریعت هستی که مظهر معرفت و حقیقت است در غلطیان باب سوم پولس در مورد ماهیت شریعت صحبت میکنه که باعث میشه در شما اثر کنه و نشون بده که شما به نجات نیاز دارید پولس به ما میگه که شریعت خدا خط مستقیمیه که این خط به شما نشون میده که چقدر کج راه میرید این ماهیت شریعت نیست که شما رو نجات میده ولی به شما نشون میده که شما با نگه داشتن شریعت به تنهایی و توسط خودتون نمیتونید نجات دریافت کنید. سوال مورد علاقه پولوس وقتی که وارد این موضوع میشه در آخرین آیه از باب دوم عنوان شده که به طور زمینی اینه. اگر شما با به جا آوردن شریعت میتوانستید نجات پیدا کنید پس چرا مسیح بر روی صلیب مرد؟ اگر شما خودتون رو با به جاوردن قوانین نجات دادید پس مسیح بیهوده مرده. به عبارت دیگه خدا پسر خودش رو بیهوده روی صلیب فرستاد. اگه شما خودتون با به جا آوردن شریعت میتوانستید نجات پیدا کنید خدا نباید پسرش رو روی صلیب میفرستاد. خدا باید با شما مشورت میکرد و شما به خدا میگفتید تو نباید پسرت عیسی رو روی صلیب بفرستی که با مرگ سختی مواجه بشه من میتونم ده فرمان رو به جا بیارم من میتونم اون قوانینی که تو روی کوه سینا به ما دادی نگه دارم و خودم رو نجات بدن. البته می‌دونیم واقعیت اینه که شما نمیتونستید خودتون رو نجات بدید چون شما نمیتونستید ده کام رو به جا بیارید. اگر فکر می کنید که با کارهای خوب میتونید خودتون رو نجات بدید، از کجا میدونید که به مقدار لازم کار خوب انجام دادید یا نه؟ از کجا میدونید که امتیاز کافی رو جمع کردید تا نجات پیدا کنید؟ این از همون سوالاتیه که پولس در باب سوم نامه خودش به گلاتیان اونها رو پرسیده همونطور که پولس شریعت را از بالا نگاه میکنه به ما میگه که شریعت دلیل و ماهیتی داره در اون روزها تحصیل کردن خیلی با امروز فرق داشت هر کسی توانایی تحصیل نداشت در واقع افراد کمی بودن که از این امتیاز برخوردار بودند در بیشتر مناطق افراد ثروتمند و اصیل بودند که تحصیلات داشتند مدرسه های دولتی وجود نداشت و در یک خانه رومی به دنیا اومد او احتمالاً یک معلم خانوادگی داشته یعنی هر جایی که این خانواده می رفتن، این معلم هم با اونها می رفته و جزی از خانواده بوده دلیل وجود این معلم ها در خانواده این بود تا به بچه‌ها تعلیم بده و به اونها آموزش بده و بچه‌ها رو برای روزی آماده کنه که سنشون به جایی میرسه که در جامعه زندگی کنند و وظیفه خودشون رو برای زندگی انجام بدن این معلم‌ها بچه‌ها رو برای اون روز آماده می‌کردن. حالا پولس به ما میگه که شریعت هم برای همینه. شریعت تنها معلمیه که خدا برای شما انتخاب کرده تا نجاتش رو دریافت کنید. دلیل شریعت اینه که به شما نشون بده که خودتون به تنهایی قادر نیستید که نجات پیدا کنید. پس زمانی که مسیح آمد، شما متوجه بشید که به نجات نیاز دارید باید برای شما ثابت شده باشه که حتی 100 سال هم تا به شریعت باشید، نمیتونید نجات پیدا کنید. در باب چهار پولس پولوس انجیل تمثیلی رو معرفی میکنه. میبینید این زمینه کتاب قلاتیانه. پولوس انجیل تحریف شده رو معرفی کرد، بعد انجیل مطلق، بعد انجیل وارونه و از طریق اون سوالات انجیل در معرض دید و تصاویری از ابراهیم و معلم سرخونه رو معرفی کرد. اما در باب چهار پولس انجیل تمثیلی رو معرفی میکنه. پولس میگه ابراهیم دو پسر داشت، یکی از کنیز و دیگری از زن آزاد. حالا این تاریخه ولی تمثیلی هم هست. اینجا جاییه که ما اصل تفسیر کتاب مقدسی رو یاد میگیریم. شما جایی رو در کتاب مقدس دارید که تاریخیه که واقعا اتفاق افتاده و اسطوره نیست. ولی اون قسمت تمثیلی هم هست. یک داستان تمثیلی، داستان مردم، مکان و یا چیزی که در عینی که روحانی هست، از نظر اخلاقی هم داستان آموزنده ایه. همونطور که ما عهد عتیق رو بررسی کردیم، تمسیل های بسیاری رو دیدیم. همینطور ما تمسیل های زیادی رو در کتاب مکاشفه که آخرین کتاب مقدسه خواهیم دید. ما تمسیل های بسیاری رو در انجیل یوحنا دیدیم، چون یوحنا به زبان رمز نوشته شده که زبان نوشته های تمثیلیه اینجا پولس میگه که ابراهیم دو پسر داشت. این تاریخه. اگر شما در خبرهای امروزه وقایع سرزمین های مقدس رو دنبال کنید میتونید این واقعیت تاریخی رو بفهمید که واقعا نوع انسان در این مناطق هستن عربها و یهودیان اگر ابراهیم به حرف زنش گوش نداده بود ما این بحرانها رو در خاورمیانه میانه نداشتیم اما ابراهیم به حرف زنش گوش داد و از کنیز مصری خودش هاجر پسری به دنیا آورد اون بچه اسماییل پدر عرب و امت اسلامی شد اونها خودشون رو نوادگان اسماعیل میدونن اما به قول پولوس این نکته تمثیلی هم داره پسر اول ابراهیم اسماعیل تصویری از خواهش جسمه کارهایی که جسم انجام میده طبیعت انسانی که توسط خدا تچیز نشده خدا به ابراهیم گفته بود که به او پسری خواهد داد و ابراهیم تلاش کرد که به خدا کمک کنه بعد از همه اینها ابراهیم زمان زیادی برای پسرش صبر کرد. ابراهیم چند برنامه رو با خدا در میون گذاشته بود و اینکه از خدا میخواست برای سارا ای بکنه. ابراهیم به خدا پیشنهاد میکنه که لوط رو وارث خودش بدونه. ولی در باب پانزدهم پیدایش خدا بهش میگه که او بنده مورد اعتمادشه و بهش وارثی خواهد داد. و واقعا ابراهیم هم در این زمینه به خدا کمک کرد. در باب شانزدهم کتاب پیدایش او از طریق کنیز مصری زنش هاجر پدر اسمایل شد اون روزها داشتن بچه از یک کنیز رسم پذیرفته شده ای بود در این بخش تاریخی کاری که ابراهیم انجام داد کار غیر اخلاقی نبود نکته ای که پولس اینجا میگه اینه که دلیلی که باعث شد اسمایل به این دنیا بیاد نقشه ابراهیم بود نه نقشه خدا ابراهیم تلاش می کرد که این رو معجزه ای از طرف خدا بدونه داستان هاجر و اسماعیل مثالی از جسمه چیزی که پولوس اون رو جسم میخونه اینه وقتی که شما چیزی رو با دید خودتون میخواین و از خدا میخواین که اون رو برکت بده پولوس میگه اون کار کار جسمه وقتی شما از خدا میخواین که فلان کار رو انجام بده دارید تلاش میکنید که کار در جسم رو انجام بدید شما دعا نمی کنید بلکه به خدا معموریت میدید شاید شما های مردم مردمی شنیده باشید که میگن من این رو درخواست می‌کنم ولی در واقع اونا دارن به خدا امر میکنن. اونا سعی میکنن به خدا بگن اون شخص رو شفا بده این کار رو بکن و اون کار رو نکن چون من اینو درخواست میکنم. این رو درخواست میکنم یعنی خدایا برو و اینو انجام بده و بعدش وقتی که تمام کردی برگرد تا کار دیگه‌ای بهت بدم پولس میگه این خواهش جسمه اینجا خدا و دعا ای در کار نیست یک دعا کننده واقعی دعا رو وظیفه خودش میدونه افرادی که دعا میکنن به ما نشون میدن که اونها با کاغذی خالی از دستور و ماموریت به حضور خدا میرن پولس به ما میگه که ما ایمانداران دونو کار در زندگی هامون انجام میدیم کاری که در جسمه و کاری که در روحه جسم و روح در مقابل همدیگه میجنگن وقتی که شما روح القدس رو دریافت میکنید وقفه ای در زندگی شما ایجاد نمیشه پولس سه بار در آیه 20 از باب دوم غلاطیان میگه زندگی میکنم اکنون زندگی میکنم من زندگی میکنم پولس نمیگه که زندگی من متوقف شده پولس میگه من با مسیح مصلوب شدهم به طوری که دیگران که زندگی میکنند من نیستم بلکه مسیح هست که در من زندگی میکند بعد پولس میگه من زندگی میکنم من واقعا زندگی میکنم به این خاطر که من با مسیح مصلوب شدم وقتی که شما مسیح رو در زندگی های خودتون دریافت می کنید شما انتخابی دارید یا میتونید کاری رو که مسیح به شما گفته انجام بدید و یا شما به مسیح بگید که چه کاری در زندگی شما انجام بده مسیح در زیر زمین زندگی شما وجود داشته باشه و هر کاری رو که می‌خواید براتون انجام بده پولس میگه که این خواهش جسمه و این کاریه که جسم انجام میده. حالا پولس به ما میگه که این دو پسر ابراهیم تمثیلی هستند داستان زندگی اسمایل کسی که مادرش هاجر بود داستان تمثیلی جسمه ولی داستان زندگی اسحاق که مادرش ساره بود داستان تمثیلی روحه چون فقط خدا میتونه این کار را انجام بده در پیدایش باب 18 آیه 11 خوندیم که ابراهیم و سارا خیلی پیر بودن و عادت ماهانه زنانگی سارا قطع شده بود تولد اسحاق یک معجزه بود زمانی که خدا به ابراهیم ظاهر شد و ابراهیم رو مطمئن کرد که سارا ما در اون پسریه که خدا او رو براش در نظر گرفته ابراهیم رو در روی خدا خندهش گرفت او نمیتونست باور کنه که خدا میتونه در زندگی ساره 90 ساله معجزه بزرگی انجام بده یادتونه که پولس خاری در جسم خودش داشت پولس به ما گفت که خدا این خار رو در جسم او قرار داده تا پولس مغرور نشه و کارهایی که خودش میخواد انجام نده منزورش همون کارهایی بود که جسم انجام میداد. خدا پولس را از نظر جسمی ضعیف نگه داشته بود که پولس بگه اطمینان و اعتماد من قطعا بر خدا هست و وقتی که اطمینان و اعتماد من بر او باشه کاری رو انجام میدم که او میخواد. و این کار باعث وجود عطایای روح در زندگی و خدمت من میشه. این خلاصه و جمعبندی من از چیزیه که پولس در باب چهارم غلاتیان میگه. در باب پنجم پولس تضاد بین خواهش جسم و میوه روح رو بیان میکنه در باب چهارم پولس تمثیل خواهش جسم و میوه روح رو از طریق انجیل تمثیلی بیان کرد پولس به ما گفت که ابراهیم دو پسر داشت داستان پسر اول تمثیلی از جسم بود ولی داستان پسر دوم تمثیلی از روح و خواهش روحه پولس به غلاطیان و به من و شما میگه که ما توسط کارهای خودمون نجات پیدا نکردیم کارهای ما نیتهای ما یا پیروزیهای ما باعث نجات ما نمیشه این دلیل سادهیه که چرا خدا نجات ما رو از طریق مسیح امکان پذیر کرده روح القدس به ما تجربه توبر رو داده و عطیه ایمان تا بتونیم نجات خدا رو باور کنیم و اون رو دریافت کنیم از شما میخوام که با خودتون رو راست باشید آیا شما تعلیم گرفتید که میتونید با خوب بودن و انجام یک سری از قوانین نجات پیدا کنید یا جزی از نجات یافته ها باشید، پولوس میگه که این کاملا اشتباهه، این خواهش جسمه. شما باید با روح به دنیا بیایید. خداست که نجات رو وارد زندگی ما میکنه. آیا خدا شما رو به طور معجزه آسایی نجات داده؟ اگر نجات نداده، با خدا همین الان صحبت کنید و به او بگید که میخواهید از قدرت گناه و مرک نجات پیدا کنید. دوستان، امروزه خیلی هستند هستن که میخوان انجیل رو پیچیده و بغرنج بکنن و اما که بسیاری هدیه خدا رو بپذیرن. نجات هدیه خداست. هدیه که نمیشه اون رو خرید یا به وسیله کارهای خوب اون رو به دستا برد. همونطور که معلم ما درخواست کرد، اگه شما هدیه فیض خدا رو دریافت نکردید، امروز این کار رو بکنید و دعای ما اینه که این درس ها شما رو تشویق کنه که فیض خدا رو با دیگران در میون بذارید تا برنامه دوباره دعا می کنم که آرامش خدا توسط فیض او با ایمان وارد زندگیاتون بشه و با شما بمونه آمین